اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین بحث مالکیت فکری جلسه ششم یکی از ادله کسانی که موافق با مالکیت معنوی و فکری هستند عبارت است از قاعده زرر قبلا بحث عدلهی که بیان می که تصرف در اموال دیگران حرام است بدون اجازه و تصرف در اموال احتیاج به رضایت دارد به عنوان دوی دلیل مطرح شد دلیل دوم عبارت هست از قاعدهٔ لازرر که یکی از قواعد معروف فقهی موافقان با این قاعده بیان میکنند که هر معامله یا حکمی که به موجب آن به جان آبرو یا مال مسلمانی زرر و زیان وارد بشه از نظر شعر محکومه و شارع او رو حرام کرده است کسانی که موافق با این قاعده هستند میگن حقوق مالکیت معنوی زیر مجموعه این قاعده قرار میگیره چرا؟ زیرا هر محصول معنوی حاصل تلاش و زحمات کسی است که او رو پدید آورده یک مؤلف یا مختره کسی که خالق یک اثر هنری است و یا اموری از این قبیل زمان فراوانی رو صرف کرده تا این اثر رو خلق بکنه اگر ما بنا باشیم زهمات و حزینه هایی که یک شخص بر اثر خلق این اثر خودش ایجاد کرده و مصرف کرده این رو نادیده بگیریم این معادله به زرر زدن به اوست و این با اصول فقهی تنافی داره و دلیلش هم این است که الان وسایل ارتباط جمعی و وسایل جدید برای تولید تولیدات فکری مثل سی ها و الی اینترنت متفکرین مختلف چاره ای ندارن از این ابزارها استفاده کنند و همگامی کنند به طبع این امکان دستیابی به محصولات فکری دیگران خیلی آسانتر و سریعتر از گذشته است و به همین مقدار هم حفاظت از این حریمها مشکلتر و دشوارتر میشه یعنی احتیاج دارد که از طرف قانونگزار حمایتی بیشتری بشوند تا اینها محصولات فکری در اختیار خودشون باشه و اگر از نظر قانون حمایتی از تولیدات معنوی نشود صاحبان فکر و اندیشه اینا دیگه دل سرد میشن و ای برای انجام کارهای علمی و فرهنگی نخواهند داشت نزا کسی که اقدام به تعلیف کتاب، تولید یک فیلم، یا ابدای اختراع میکنه چون زحمات فراوانی کشیده اگر بناباشه دیگران مجاز باشند که اثر فکری او رو تکثیر یا تولید انبوه بکنند خب این لازمش اینه که پدید این آثار زرر میکنند و طبق قاعده لا زرر جلو این عمل باید گرفته بشود. خب در رابطه با قائده لا زرر هم گفتن ولو معانی مختلفی دارد ولی یقینا میتونیم از این قاعده استفاده کنیم که تصرف در چنین حقوقی جایز نیست و مستلزم این است که ما از صاحبان او اجازه بگیریم در رابطه با این قاعده باید عرض بکنیم این قاعده لا زرر در ضمن روایات فراوانی آمده که حتی ادعا شده مستفیز است یعنی تعدادش از سه تا بیشتر است بلا به حد تباتر نمیرسد ولی فراوان است و مجبوان ما سه تا طایفه داریم که این کلمه در اونها آمده یکی جریان سمرت ابن جندب است یکی قضاوت های رسول خدا است و بعضی هم است که این روایت بدون ذکر منشأ آمده و به حسب سند که آیا این روایت سند دارد یا نه از راه های مختلفی سعی کردند که سند این حدیث لازرر و لازرار رو درست بکنند و در نتیجه صحت این روایت رو به حسب سند ثابت بکنن که مجموعاً پنج طریق وارد شده که در این ستا تایفه چون قالب روایاتی که آمده در تایفه سوم ارسال داره تایفه دوم هم او سندش ضعیفه تایفه اول هم روایات فراوانی دارد که می مشکل بر بیخوره. فقط روایت یک روایت از طایف اولا که سندش معتبره و این روایات در کتب روای ما آمده کتاب منلای از رفقی جلد 3 صفحه 5 و فروع کافی جلد 5 کتاب المعیشه منلای از رفقی دوباره جلد 3 صفحه 147 و اسائل و و شیعه جلد 17 باب 7 از ابواب احیاء موات یا باب 5 از ابواب شفاعه و من لا یزور جلد 4 باب میراث اهل ملل در کتب اهل سنت هم اینطور آمده مسند احمد در جلد 1 صفحه 313 جلد 5 صفحه 327 به هر جهت یک مسئله ی سندی دارد که با طرق مختلفی که بیان شده سند این روایت تصحیح می شود و اعتبار پیدا می کند اما از نظر دلالت این روایت خب مفرداتی داره که کلمه ضرر یعنی چه کلمه زرار یعنی چه لفظ لا که در اینجا آمده کدوم از اقسام است که در ادبیات عرب مطرح است در هر کدوم از اینا احتمالات است و فتاوا و اقبال فراوانی هم وجود دارد وقتی که در معنای این کلام و مفاد ترکیبی حدیث لا و ولا زراره که آن این هم مختلف نقل شده بعضی فقط داره لا و لا زراره بعضی در داره لا و لا زراره فی اسلام بعضی داره لا زرر و زرار, زرار علا مؤمنین دوباره به اعتبار دیگر این سه جور نقل شده تو بعضی از روایات فقط کلمه لا و ولا زرار آمده در بعضی از روایات قضیه سمنت جنده است که لا زرر ولا زرار بهش اضافه شده است در بعضی از روایات هم لا زرر فقط آمده مثلا زرار کنارش نیامده به هر جهت در نقل این روایت عبارت ها مختلفه اما مجموعا اون روایت که معتبر است و با طرق مختلف می ثابت کرد که متزمنه بر دو فقر است لا زرار و لا زرار می شود بر اساس این به این روایت تمسک کرد اما مفاد این حدیث و این جمله چیست شیش جور تفسیر شده است و شش جور معنا کرده اند یعنی سه جور معنا است که هر جور هم به دو قسم تقسیم می شود مجوعه می شود شیش معنا یکی می مفاد این قضیه نفی حکم زرریست حالا یا منظور این است که حکمی که زرر از اونا ناشی می شود آن چنین حکمی نیست و وجود ندارد خب این یکی این نظر جناب شیخ انصاریز و میرزا نائینی. یا بگیم نه نفی حکم زرریز به واسطه نفی موضوعش. یعنی چون موضوع زرری ما نداریم پس حکم زرری هم نداریم. این نظر صاحب الکفاه است. این دوتا معنا. بعضیم میگن مفاد قاعده تحریم زرر است. حالا این دوباره دو برداشته بعضا میگن تحریم ضرر تکلیفی یعنی حرام است ضرر زدن که نظر شیخ خوششریه است یه نظر دیگه است که حرام است ضرر زدن چه تکلیفند چه وضعا حرمت تکلیفی و وضعی این چهار تا معنا معنای پنجم این است که این روایت میخواد بگه زرری که قابل تدارک و جبران نباشد ما نداریم این رو دو جور دوباره میشه تفسیر کرد میگن استفاده میکنیم زرری که متدارک نمیشود نداریم یعنی شما اگر به کسی زرر زدی که قابل تدارک نیست باید تدارک کنی زرر او را نظر فازلتونی یک جور دیگه همین نفی زرر غیر متدارک رو معنا کردن نفی شده زرر غیر متدارک اما از این که اگر زرر زدی باید تدارک کنی یا نه نفی شده حکم زرری که زرر مربوط به حکم باشه نه به فعل مکلف حکم زرر شده نه فعل مکلف به هرجهت جهت شیش جور معنا شده است و هر کدوم از این شیشتا تعریف هم برای خودشون توجیه و تفسیری دارن بر اساس اینکه ضرر را و زرار را و کلمه لا را چگونه معنا کنن بنابر اینکه این حدیثی که در ضمن بعضی از قضایی واقع شده است در ارتباط اون قضیه چه ظهوری دارد و چگونه معنا می شود پس بنابراین در رابطه با حدیث لا زرر و لا زرار این حدیث مشهور مستفیزی است و حسب سند هم قابل اعتناع هست اما به حسب دلالت دارای احتمالات فراوان است اون کسانی که تمسک می کنند برای صحت مالکیت معنوی اینها میخوان تمسک به این بکنن که شارع مقدس حکم جعل جعل نکرده چرا؟ چون اگر جایز باشه که مشتری وقتی که مثلا کتابی رو میخره یا فیلمی رو که به تا CD یا وسائل دیگر در افرادیان قرار میگیره خودش نشر بده توضیح بکنه چاپ بکنه و تولید کنه در تیراژ بالا و اجازه صاحب اثر لازم نداشته باشد این جواز تکثیر و انتشار و چاپ و تولید اثر دیگران بدون اجازه موجب زرر صاحب اثر خواهد شد خب حالا این زرر از کجا ناشی میشه؟ از حکمه به جواز یا بگیم نه این حکمه به جواز چون است شاره گفته لا زرره چون ما در خارج زرر نداریم به این معنا که حکم زرری نداریم یا معناش اینه که ضرر رساندن حرام است شما حق نداری به کسی زرر بزنی و در اینجا چون شما تولید و تکثیر میکنی بدون اجازه این زرریست به صاحب فکر البته این متوقف بر این است که اینجا زرر سرق بکند اگر شما چیزی را که تولید دیگران است بدون اجازه او استفاده ازش بکنی و تکثیر رو توزیع کنی و منافع مالی از او به دستت بیاد این زرر به صاحب اون اثر فکری و معنوی هست اگر ضرر باشد روایت لازرر میگوید زرر زدن به دیگران حرام است هم تکلیفا و هم مثلا وزن یعنی این عمل شما باطل است این معامله شما هم کار حرامی کردی هم نمیتونی بفروشی این رو و به حدیث لازرر میشود تمسک کرد خب پس بنابراین طبق بعضی از احتمالات میشود به حدیث لازرر تمسک کرد و گفتش بگوییم که اگر اذنی در کار نباشه این ضرری است به صاحب اثر که این زحمت ها رو همه رو او کشیده شما میخواهید از منافعش استفاده کنید و هر بار با چاپ کردن و تکثیر و تولید و انتشار آثاری که دیگران خلق کردند منافع مالی زیادی رو به جیب بزنی و بهره برداری بکنید و چون این زرر به صاحب اثر حساب می شود پس این کار شما حرام است. حالا یا تکلیفاً فقط حرام جایز نیست. پس باید ازمگیری یا بگیم تکلیفاً و وزن هم کار حرامی کردی هم معاملهی که میکنی باطله یعنی این چاپی که میکنی و تکسیر میکنی و میفروشی و منافی به دست میآوری حرام است. خب گفتیم این متوقف بر این است که اولاً این حق تکسیر یک اثری را که یک صاحب اثر وجود آورده بگیم منحصره به اوست دیگران حق ندارن تکثیر بکنن ثانیان این تکثیر و بدون اجازه انتشار دادن طوری دیگران زرر به صاحب اثر حساب می شود لذا در موقعی می شود به حدیث لا زرر تبقی قالب معناهایی که از این حدیث شده تمسک کرد که این دوتا قبلا ثابت شده باشد یکی بیم تمام این حقوق ولو طرف اثرشو فروخته کتابشو سیدیشو و نوارش نوارشو فروخته اما این حق استفاده های مادی از این بردن ولو معلواسته فقط منحصره به صاحب حق است. ثانیا اگر کسی این حق رو را نکند زرر به صاحب اثر زده است. لذا طبق اکثر احتمالاتی که در حدیث لازرر هست این کار حرام یا باطل در نتیجه اگر کسی بخواد تولید کنه اثر دیگری را حتما باید ازن بگیرد این در صورتی است که ما هنوز بحث نکردیم از این که این جملهی ای که پشت آثار می نویسن که حق تکثیر تولید چاپ کردن کپی گرفتن اینها بدون اجازه ناشر یا معلف یا اون مؤسسهی ای که اینو در اختیار دیگران قرار میده جایز نیست اگر بگیم اینها به عنوان شرط ضمن عقد است، ولو به صورت مکتوب اول کتاب ها می رو نبار ها می که بدون اجازه حق تکثیر و تولید ندارید ایگوظ به اون شرط ضمن عقد است مسئله خیلی راحت بررسی می شود چرا چون اگر شرط ضمن عقد شد و این فروش کتاب یا نوار یا ابزار دیگر به مشتری که معامله است بین اون فرض کنید فروشنده یا صاحب اثر با مشتری یه شرط ضمن او شده حالا لازم شرط به زبان گفته بشود مکتوب باشد کافی است همش شما اول کتاب میبینی و می‌خوانی که این آقا گفته حق انتشار و چاپ یا اموری از این قبیل مخصوص مؤلف است، مصنف است یا مخصوص ناشر است یا مؤسسه ای که این کار رو مثلاً تکس تولیدش رو عهده گرفته در حق اوست، و میشه شرط ضمن عقد، و قاعده کلی داریم که اگر شرط ضمن عقد که مشروعان باشه تخلف شد برای آقایی کسی که شارط است و صاحب اثر است و این شرط رو گذاشته خیار ثابت می شود. او بخواهد امضا می کند اون معاملات مشتری را نخواهد نه لذا مسئله راحتی قابل حل است اما بحث در این است که اگر نه حالا این جملاتی را که اول کتاب ها می به عنوان شرط ضمن عقد نباشه، نه شرط خارج عقد باشد و در ضمن عقد در ذهن طرفین فرض کنید نیست در ذهن مشتری یا نه این شرط خارج از عقد در معامله معامله مبتنی بر اون نیست این حال توضیعست تذکر است آن، ولی عقد مبتنی بر اون نیست ولو آقایی که ناشر یا مؤلفه هدفش این است که همه کارا باید با اجازه من باشه اما عقد رو این شرن منعقد نمی‌کنه درسته رو کتابش نوشته حق تالیف نشر تکثیر کپی کپیرایت، رایت آخر منوط به اجازه من است اما این عقد فروش این نوار یا کتاب مبتنی بر این شرط نیست لذا در ذهنش تمرکز برای شرط نداره در اینجا حالا بحثه حالا این آقایی که رو کتابش اینو نوشته میشود بگوییم این کار جایز نیست یا نه این نوشته اثری ندارد چون در ضمن عقد نیامده و تمرکز رو این نباید بوده و معامله متوقفه بر این نبوده پس بنابراین ولو چنین چیزی نوشته ولو طرف هم راضی نباشه من میرم در چاپ می کنم یه علمیست یه است باعث ترویج فرهنگ علم است آداب است باروره و زحمت شدیگر کشیده باشد من کتاب خریدم حق انواع تصرف رو دارم لازم می خواهم کتابو کتاب رو چاپ کنم حالا چه به قایت مادی و پول در آوردن نه نه هدفم کار فرهنگی باشد بالخاره کاری به خلاف این شرعی ای نیست نباره مفتزه و مشعومی که شار نه کرده نیست علم از فرهنگ تکنولوژی تکنولوژیست و ابزار پیشرفت اجتماع است امور برای افراد کشور است چه اشکالی دارد خب پس این آیا قائل لازرر می تواند جلوی این اقدام مشتری را بگیرد که بگه تو داری زرر می زنی به آقای صاحب اثر این کار دو ضرر زدن به اوست اولین این باید ضرر زدن به او حساب بشود و این ضرر زدن متوقف بر این است که بگیم حق انتشار این کتاب بر او بلواسته واسطه مربوط به خود مؤلف و مختره است یا مثلا بفرمایید ناشر است خود او چاپ میکنه خب سودش رو میبرد و چون مؤلف حق داره سود ببره ناشرم که از مؤلف اجازه گرفته و توافق کردن که این سود مال او باشه حالا دیگرانی که می شود با یه واسطه این اثر به دست اونها رسیده آیا حق چاپ مربوطه به معلف است ولو با این گفتار که اولی کلام نوشته یا نه او چنین حقی ندارد و حق او اینقدر وسیع نیست حق او فقط برای چاپ اول است و نفر اولی که میخواد اثر او رو چاپ کنه بله باش قرارداد می بنده. کتاب چاپ کنی این مقدار از آن تو از منافع، مقداری مال من. ولی زود در هر باری که همون ناشر اول چاپ میکنه طبق قرارداد، و مقداری از منافع رو میده به آقای معلف مخترع، مبتکر و صاحب اثر، مقدارم خودش برمیداره. و بحث مشترکی است که این آثار رو گرفته، این وسایل و ابزار و وسائل کتابی، نواری و امثال اینها رو گرفته و خودش قدرت این کار رو داره و این کار منافع زیادی دارد آیا صرف این که ناشر و مبتکر اول زحماتش کشیده معنیش حق انتشارش ولوم الواسطه هم مربوط به اون ناشر یا معلف هست یا نه او چنین حقی نداره اگر ثابت کردیم چنین حقی دارد و در نتیجه مشتری بدون اذن او آمد و انتشار داد و چاپ کرد و تکثیر کرد در نتیجه ارفن زرر هم می کند در مرحله نهایی با تمسک به حدیث لا استفاده می شود زرر زدن چه به خود چه به دیگران حالا اون تفسیر حدیث لا بماند که لا و لا اینها چه فرقای فرقی با هم دارن یا تأکیدن و اگر هم فرق دارن آیا فرق جوهری دارن یا نه فرقشون اعتباریست فرق جوهری و ذاتی ندارن به هر جهت زرر زدن حرام است و این آقای مشتری داره زرر میزند به ناشر در نتیجه با این حدیث ثابت میشود که آری این کار مشتری زرر زدن به آقای مخترع یا ناشر است خب پس منابراین این رو باید ثابت کنیم که حالا انشاءالله بعد از بیان عدله همه موافقین بحث میکنیم که آیا اثر هنری مال حساب میشود یا نه و ثانیان به ملک او در می آید یا نه و ثالثا بر اثر مالکیت آیا انواع حقوق و همه حقوق را به آقای مالک اختصاص میدهد و این حق مالکیت اونقدر وسیع است که باید حتی استفاده های در حد چاپ و اینام به اذن او باشد یا نه اینو باید اثبات بشود بعد از او تمسو که به قاعده میتواند بگوید که آقای مشتری حق ندارد این کار رو کند یا علاوه بر این که حق ندارد کند و است اصلا معاملش باطل است حد اکثر می متزلزل از عقدش آقای ناشر یا مختره باید ازم بدهد و الا این چاپی که کرده پولی که به دست آورده و منافعی که نصیب او شده است متوقف و رضایت صاحب اثر است و الله این حرام است و معاملش باطل است تو اینها را انشاءالله در جای خودش بعد از بیان عدل موافقین بحث میکنیم صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین